توجه کن بازم باش حواست باشه دوباره خراب نکنی باشه درش اینا رو جدا خون ایناییم که درش خط کشیدم روی کاغذ بنویس خط نباشید سرم خونو چرا این روزا هر جایی من میرم شما رو میبینم میگن هر کسی سه بار پشت هم ببینی تو تقدیرت کاره البته به شرط که حوثی گشته گذار تو بیمارستان به سر کسی نیفتاده باشه قصد تفروج ندارم داخل بیمارستان بیمار دارم ببینیم چه چکلات به هم میاد آره خیلی خوشگله فروغ من رو یه دقیقه با طرف بزنم وایست فراموشی داشت یادم می رفتننده نیم ساعتی که پایین منتظر شماست. علیذی مدمزل منتظر من ببین چه مهرات کارت داره با حرف داره در چه خصوص عمر خیره گمونم بادو دیگه میدونی که از تأخیر خیلی بدش مید نه بادم با چهرس بزنم با خودش هرس بزنم خواهیش نکنم آمان من با تو یه دو کنم خواهیش میکنم خواهیش میکنم ماشین آماده است بفرمایم توت خریدم گذاشتم تو ماشین ماشین دستمال هم کشیدم تمیز شده بفرمایم خواهیش میکنم دیگه چیز پرانی داشته باشه تاتوی کار رو بیرون کشید. عکوی میکنه حدتیه یه برگشته ت توی عنوان نیممه یه دختر اشرافی خودشون دون رو دو فرنگ تو صفحه چکارام این روزنامه مطلبی نوشته که میتونیم ببینیم بخوام. توی همون فرنگسون خودشو بالا کشیده. تو ساعت های تنهایش یاد گرفته الان جز خبره های این حرفتون هم بکتته. خانواده مصطفی خیلی هوا شدهن. از باقیمان های قرم طب وککان خواهرش شکوه و سرتره. این رو میدونم از خودش بگوی دختر در اپاداریه حالا ظاهر نمیدونه کجا اومده سر پربادی بره بعضی از فوتوهایی که گرفته گوش نزمیه رو تیز کرده سرش خواست در سر درد میکنه مادرش مرده با پدرش رو نامادعیزه میگید کنه خیاد خونه آقاشم که دیدین این کیه پروپوسور عباسد جراح تو بیمارستان مراسمه سامخوان کار می‌کرده مدتی بازنشسته شده یا خونه نشینش کرده، چه نظر حکومتیه اس یا کاری کرده یا قرار کاری بکنه آقا من کوچکتر از شما هستم شما رو نصیحت بکنم چی می‌خوای سگی من یه مصطفی‌ام کسی به یه مصطفی نه نمی‌گه مصطفی میگی هفت تا این اینور عمر زمین میلرزه چرا می‌لرزه؟ از پولم میلرزه؟ از زور این مشنا می‌لرزه ما اینجا نه نداریم. اونی که نه یه حساب داره اونی که نمک میخوره و نمک دوم میشکنه. نه چه حساب دیگه داره کسی به یه مصطفی نه نمیگه چرا را نفتی؟ ولی نشونش اینجا نیست تنه نشتو برد بیرون ویرون تنه انداختم جلافتم سک با خانوم خیلی وقت منتظری نه تازه رسیدم بفرمین بفرمین تو. یکم تأخیر داشتی عذر می میکنم نیازی نیست حتما فروقا زمان فراموش کرده بهت بگیه خوارم خوب میشتسم سر به هواست سرش خیلی شلوغه. کارش خیلی سخته شکلات نخوردی خوشمزه هست عذاب گذشته است تازه از فرنگ رسیده ام... گفتم یه کشتی از اینا بیارم برامون میرسه بندر همه چی میخواستی بگی حرفتو بزن میدونم که زیاد دلبسته شغل من نیستی و این بند و بساط چشمتون نمیگیره هرگه بیا تو زندگی من همه چیز عوض میشه تا تو که تونستی از اون فروغ بی دست و پای لوس خانم دکتر بسازی حتما میتونی زندگی منم تغییر بدی. من از اون مردا نیستم که پاها بکنم توی کفشو بگم همونی که من میگم پس حال من حال گره تو دستایی صفاگر البته جنس مرغوبش در هر شکلی که بخوام میتونی درش بگاری ازت میخوام فرصت بدی بدونم از مرد زندگی چی میخوای. از دختر وکیل و وزیر گرفته تا دخترای دربار هر کدوم میخوام میتونم به عنوان عروس انتخاب کنم و میدونم دست رو هر کدوم بذارم نامید نمیشم اما تو را انتخاب کردم چون چیزی در تو دیدم که تو کس دیگه ندیدم نمیخوام فکر کنی به خانواده ما مدیونی یا چون به هر جا که رسیدی به خاطر ما بوده حق من هستی میگم حق منی چون دوستت دارم و سعادت تو در ازدواج با من ازدواج ندارم مربانو تو که قرار همین فردا بری خونه بخت زمان کافی داری من که مانع پیشرفته تو نمیشم. آخه من من انتظار داشتم تو هم مثل من منتظر رسیدن این لحظه باشی امینطور که به نظر میرسه اصلا خوشحال نشدی تو مثل برادر منی خیلی خوب. بیش نمیخوام این نمیخواه مختوتو با شنگدنی یه حرفای بگیرم نمیخواستم ناراحت کنم. ناراحت نیستم مقداری فکر کنی شما که نمیخوایی منو مجبور کنی این تنها برایت پر کردم که خودت بالا بکشی حالا اگه میخوای تا آخر عمرت تحجاه بمونی انتخاب با خودته اسمایل بالا آقا این فراد خانی بی پدر مادر دوز ببخشید برو اهوانو برو فکر کن هر چقدر که میخوای فکر کن تو مجبور به هیچ کاری نیستی تو دوست نیمی باشه خمی دکتر یه لحظه حتما مشکلی پیش اومده اه... میتونم ازتون یه خواهشی بکنم خلاصم جراحی مریضم ایشون اشون دو احده بگیرم پروفسور بعد. دیگه کجای روییم؟ همه مردم امروز چشمشان به جان بروز و گوششان به اخبار است که ازون جامی است. حبوب کردن سلام. سلام. دوباره تو میگشم خانم. فامیلیم شکیباست. بله. میخوام ازت نیخایشی بخونم برم به کاری انجام بدیم. ممکنه بفرمایید. شما این آقارو میشنسیم؟ بله این اکسو خودم از ایشون گرفتم میخواستم لسپ بکنین با آشون صحبت بکنین عمل جرایی مریضم او ایشون برای این اومده اینجا دکتر و شایسته زیاده شما اینجا نوشتیم ایشون استثنان این برقه رو بیار که من قصد مزاحمت و ایجاد رنجش ندارم بلی یقین دارم فقط شما زهده این کار برمیه من هیچ کاری نمیتونم براتو میکنم من هرچقدر که حزینش بشه پرداخت میکنم آقای محترم من یه عکاسم اینجا هم دفتر مجلس نداره داروش رفاه مریض شما هم هیچ ربطی به من نداره میتونید بیت از بیمارستانش بپرسید واقعا نمیخویم کاری بکنید فقط میتونم بهشونه این رو بهتون بدم در همین چی شده؟ دست تا که. منو تو به نجاتتوم از هرچیز یه نمیاد، بگو. تیمچه کمک از من، مامان از اونجا اونجا هم باش آروباش. باش یه نفس دمیک بکش، شمورده، شمورده، بگو چی شده؟ زمان سلوان خانو ما بفرمایی بفرمایی منش کنش بزرم بیان فرید خانو چجوری کنم این کاری از دستم برمیمیم خای چه خاکی به سرم بریزم میخواد بهشون بگیم چی اتفاق نه نه نه چه خاکی نکنیم چانون برداشه میشه بیشکتی نمیشه جمعش کرد خب با چی من کنم از هم دیگه تحکیشیده یه بخش چیزی را به انجاست بلکه گوشایی شیه بشه یه سربوت بپرس محمد محمد بوله محمد میری پاشو پاشو کاره درم دیشتی آره آره باشو بیا برو اونتون برو اونتون یکشون دستش کرده تو دماغش دار چیز میکنه اون او او یکیم داره سیگار دود میکنه انگار خیلی عصبانیه سه نفره آره سه نفرن اون یکیم دار چوبش تمیز میکنه بگم اونم چوبش خونیه تو چوب خونی اون از کجا دیدی آره ببین بابا چوبش خونیه وای یه سر بزرگ زبون بلند نه نه وایسید یه ماشینم دار میاد انگار من مار دستگیر کنم یا بابا یا بابا بس وای وای ژاپونی جاب کن جاب کن واچی خالو بودی کو بپوشو تو جاب کن آ جانا اومدم آ جانا اومدم وقتی که جون آ بالا بالا Hadi hadi اگه کجا بودی؟ مثل چه همه امنامی بودم بعدم میوادی سراغه بود؟ شما اینجا چیکار میکنی؟ خون بیرون چه خبره؟ نگران نباش الان همه رو رد میکنه میره برید. کی؟ کی راپورتو شما رو دار؟ چی ندونم هزه زرباز بزنی کمارش؟ اجله کنین دیگه چیکار کار میکنی؟ رفتن زنو، دخترو، برید بگیم با اجله بیان تشیبه بیا کنشون بیر بری بیا انا نیم دو باره بفهم این بخشت شرمنده شدم ببخشید فرید جون خدا آقای خدا آقای ایشان به دکیه بعد جبران میکنم ببخشید دیگه بازم این بره تشریف بیاری این درست به موقع رسیدی چپ چپ نه نه نه این بر. این, بر. این, بر. این, بر. این بر این بر اینا توی زهر چشنه از زنها و دختری مردم نمیگفتن دست بردار نبودن آخه این چه کاریه فریده جان وقتی یه کاری خلافه چرا مید <تصفيق> اگه این معمورا پولکی نبودن معلوم نبود چه بلایی سرتون می این اینا مثل گاب بحشو میمونن رو باشن سکنجه دیبار که دیبارو خراب کنن نمیدونن آخری شاخو گردن خود چون میشکنه آجان که اهل فکر کردن نیست فقط مثل خود چربی زیاد میکنن بالاخره هر پیشرفتی یه حزینهی ای داره این مثل دیب بارونه میمونن عوضی اینکه پاره رو سالم کنن میزنن سالم و پاره پار آخرشم بسته کنش میمونه بسی ما بدبخت بچاره ها جناب شاه بین مردم محبوبیتی نداره میترسن ازش هرکی که سرش به تنش میارزیده رو بازنشسته کرده و همه بدبین نقدی که تو رخت خواهم به خودش اسلحه میبره مم. هرچی تو دوره این مشروط رشته بودن سردار پنبه کرد. بکرد دل و جرعت دارین جناب خوش رو هستم مهرگان بله جناب مهرگان اعتقاد این مردم ریشه داره راحت نمیشه خوشکندش یعنی کار این آدم نیست امروز فرداست که کتا بیان در هر صورت سرشاخت شدن با این جماعت به سلاح نیست گاهی باید برای به دستو حق هفت جنگیت <تصفح> آقا همکارتونه نه خیلی خانم نه خیل. یه مریضی دارن توی بیمارستانه که آها شما قبیبی هرچنگی با دسته این مرد قریبار میگیر میرد چی محلی میچرخونه که آبراین نداشتی مارو ببری عوض تشکرته هر کودم ازی زمان دختری که شما رو دیدارون رفتن ست دو قصه و هفتانه باز بازم کنده دختر دختر تصیصت تو کتاب خونی دور رو چرخیدی که این بیفکر یا رو یاد بگیری یه میدین مردم گوش شاده پشت نمیاریم تو مزاحمتون نمیشم من خیلی کار دارم ممنون زحمت کشید خیلی ممنون زحمت کشیدین فردا بیام دنبالتون بریم این پروفسور لازم نیست، شما رو به زحمت بندازیم خودم باشون هم هایی میکنم یقین دارم که از فرس هرکاری برمید تشریف نمیاری شازه خانو خدمتتون نماند کنه. سییدی زور میدین تو بازوستون. نیو ارزش. نه ارزش مودارانی. بعد جوبه کنی، زور بدین. میگم آقا ضعف مف دارین؟ ضعیف شدی یا جوره. اون رزین نکونین. چرا حرف میزنین؟ چی میخوای؟ آها، تو فروشگاه شده. چی گفت؟ نه اینا سوچیتو چشمه آقا شده. چی شده؟ بریم تا تلفونه. تو هر بوت نیست. با این روی خون پرش بتونیم تا آخر هفته روزنامه رو چاپ کنیم. رفتی میشنه لطفا گفتی فکر ای داره برای یک ماجره یا گریه. سعی کردم باهاشون قرار رو وقت نمیدن آقا دیروزم یه یک ساعتی پشت در اتاق شما معتر شده. این چی فرش ین که. با. یک ساعت یک ساعت باید صبح تا شب شب تا صبح پاشنه ای در اونجا جااکم بکنی.جن کاشن پیت حاضر ااکدا. بفرمایید. پانی؟ نه، یه چند دیگه هم هست، اون هارو هم چاپ می‌کنم براتون میارم. اون ای دوره میگوشایشی ایجاد بشه. حالا به بهانه اینو میتونستی دارازش رو، داییش رو، وارد عکس بکنیم. من برای تملق و چاپلوسی و تبلیغ واسه شما این نکردم. ازشون عکس گرفتم چون نیخوانم دکتر رو محفظن بسیار خرابه خوانم شکری بود ولی شما ملتفت نیستید. اینجا پاریس نیست، اینجا اینجاست مردم به سختی مجله میخرن اگه وز به همین منوال پیش بره و در اینجا تخته کرد رفت من میدونم شما میتونی برای بهبود ماجرا یه قدمی برداری اما تعلل میکنی نمیدونم چرا میخواین یه کتاب توزیع و تفسیر تراهم کنی متن کلامتون رو بگید با مهرداد خان صحبت بکنی باش حرف بزنید من مطمئنم یه چیزی شده که باعث دلنجیگی خاطرشون شده خودشون بس نگوننشون هیچ کدوم تالقاتشون رو نمیدن به منجله. هر چقدر باشون تماس میگیرم هر چقدر تلفن میکنم هیچ جواب برخولی ندارن که بدن پیگیری این دست معقولات جزو وظیفه بنده نیست خوبه لقاح این وضعیت کاری بکنیم. من شما نداره و این آباد ادای وفاداری هردو تامون توی تو گیر می کنیم. آره. خب خوشبختانه. خب که باشون حرف بزنید بلو یهویدم دستشپو بلو گفتم بلو موش رو برمی تو صورتش یهویدم بردی جلو صورتش گفتی په آقا ماره بگی دیگه سر که بوزن یعنی بدیریم انگار که مارمولک برمیدن تو شم اونه فقط این به سر صورتی کسی میزنم بگه اینه طالب رفاقتم طالب دوستیم مرد بس با عقلش به دل بقیه حکومت کن، نبا زودش آره، علیمه اما تهبای جلیه همون ماسته، یه یه اصلا جلیه کشم پاک نمیشه اصلا یانم نمیره آقا یارو لفتوزه گفت، تو زیر همون لفی میخوابی که من دوختم آقا شما رو میگی، قاطی نکردی، از این برای ستون به اون برای ستون که اونم ایس قدر نب، ایس ندم، یه جهی سری. <تصح> <تصفيق> <تصفيق> ای بابا من از تو چی میخوام تو با من چی میگی گم یه کاری بکنی این محوان رو غافل گیرش کنی آقا اون که میدونی گاون نروه ایش که نمیکشه شخ که نمیزنه هیست زمین زراحت دل همکیو میکنه سعرهای سوزا چیه سلام سلام ماه مجلس سرمه جادو به چشمت مالیدی پیشونید معلومه چی تو دلت میگذره نمیخواد چیزی بگی بی, بی بشی بدخلی سری که عشق نداره کدوی بیباره لبی که خنده نداره شکاف دیواره سر من کدوی بیباره یا لبم شکاف دیواره توف و روخ مثل من مثل و آفتابی عزیز جون همتی شما جد اینجاست محروز. سالاری آقا برو احسن فالوده، دو تا فالوده، دو تا بستنی، دو تو یک بهش بگی بیا نوچرم، آب نیم داشته باشه؟ آب چی خانم، شما چی؟ نمی خورم نوچرم، تا آج سر ما این این بهروز ها ما از بچگی همیشه کنار هم بودیم من مرد بودم یا بهروز همچین میگه انگار الان یه گوز پشت درآوردی یه اسام گرفتی دستت رد کردی نه؟ من در مورد بچگی اون حرف میزنم ازت ممنونم از بچگی تا الان درحقم برادری کردی همیشه مثل یه برادر کنارم بوده. این داستان برادربردر چیه توی میگی؟ برادر سرری چنده از اون موقع تا حالا روزی نبوده که فکر فکریال روز هممون اگه رو حرفها خندات شومون بچهکی بودیم همش خواب میدیدم. دوازیدنه تو من میبادم نجاتت میدادم موقع نجات دادن جونمه دست میدادم بره. تو فکر نمی کنی عاشقی باید دو طرفه باشه؟ چند سالته؟ تو که بهتر از خود من میدونی ما این همه سال گذشت دروازه دلتو باز کن بذارین چنگک بیفته تو حلقهش در دلتو رو به همه بستی اینجوریام هم نیست چرا همینی که میگم؟ این نیست که منو دوست نداشته باشی تو هیچ کسی دوست نداری همینه همین کس دلگیر نمیشم نه باور کن چی یعنی چی یعنی کسی دیگه رو دوست داری پای کسی در میونه چه بخوای چه نخوای چه گوش کنی چه گوش نکنی من اهلش قاشقگی نیستم الانم اومدم اینجا مطمئنت کنم هیچ اتفاقی بین من و تو نمیافته ببین من تمام تلاشمو میکنم اگه اتفاقی نیفتاد نقلی نیست دی افتاده دیگه به زور که نمیشه دلبری کرد میشه آبا ول کنین حرفا رو مجله به کسادی خورده میگن رو قطع کردین نقل آگاهی‌ها که دخلی به خسیساری تو از من نداره کدوم آگهی چی میگی یعنی گمان میکنی تلافی جواب ردیه که به من دادی بیا همین الان یه عکاسی تو لاله‌زار بخرم برات این روزا عکاسی زن حکم طلا رو داره من دار و ندارم مدیون شکوه خانم و خانواده شما کار مهم نیست فقط نمیخوام که از من دلگیر باشی خاطرت برام خیلی عزیزه. هر کاری بخوای برات میکنم هر کاری فراموشم کن قبول کن که من تو به درد زندگی با هم نمیخواریم آگهی ها رو قطع نکن اگه لحظه ای فکر کردی قد شدنه آگهیا یا کارت ربط یه شخصی مونده رو سخت دارش دگوهی اون رو علتش رو پیدا کن نباید مزاحمت زایمت می راست میکی بیام یه لحظه بیمخوایم ایسی نشانت بدم یه چیزی بیام. دقیم آخری مودله تو سرعت و حیبت تا نداره البته سلاح نیز قبل از گرفتن تستیقیم رو بدمش به تا ولی یه دوری میشه برسی دوره زده بایدم هدیه رو پس بده آه کری کردن برای این آدم از بعد و کجی و اصطدا ن بهتره. هی وای یه تیلیا میزنه میزنم مس شما آواز بخوری. نجف دنیاش شلیت دنبه. میتونم برای بغضت همه چیمو جاده باشم. میتونم. به خاطر تو از نفس افتاده باشم میتونم دنیا رو حتی با تو نادیده بگیرم تو رو یاد من نیاره شمت خاطره یه میره. تو فکر نمی کنیش خواه بعد باید دو طرفه باشه جوری که از بچگی تا الان در حقم برادری تایی همیشه مثل یه برادر کنارم دیدی درد تو آخر درد من میشه این بازی تن به تن میشه سلامی نه من خیر من مجبورم الان اومدم اینجا مطمئن کنم هیچ اتفاقی بین من وش جستوکه فراموشم نمیخوام از دنیا بر چرا اون چیه؟ گمبور بیرون پاشو پاشو خجالت میکش. فروغ پاپیچه چه من نشو امروز روز من نیست چی شده که نوه مصطفی، مشت زن و یک که بزنه تهرون اینجوری خودشو باخته قربون چشمات برم من این همه دختر تو چرا بنگ کردی به این خوشبیر خانم فروغ طبعا. خودم دست بهترین دختره تهران میزنم تو دستت با اصل و نسب با کمالات فروغنم وقتی این پاشو یکی آوردم حتما بعد بریش پاشو من نواصل دیدن دارم نشنیدن این یکی دوای دردت ها نمیری نه پاشو بیا اگه بد بود برگرد پاشو یه ببینید دست از سر من برمیده دیوانه شدی ده دقیقه به حرفاش گوش کن اگه بهش ایمان نایواردی هرچی دلت خواست شرخی میکنی یه زده به سر جان به خاطر من آدمی زاد تازنده است عمر نوح و تجربه لغمانم داشته باشه باز محتاج شنیدنه با کن در گوشتو بری زینا رو اسمت مهرات. اسم مادرت ملک خاتم پنچار و هشت سره دوازده یکی از سیزده کم میاره یکی از سیزده کم میاره پنج بابت ملک خاتون میشه شش شش آه شما تو بروج خاکی سیارت اتارده سرد خشکی و سوداوی و زلجسده تو طبیعتت گشاده روی سخی و نفسی خوشرو خوشبو خوشدل سالم صاحب اراده صاحب حکمت صاحب استعداد کتاب علم ادب نقل بلاغت صاحب وقاری اما اما سبوک روحی و میگر دوستار عیش و اشرت و لهو و لعب و فسق و جو. روحت با صاحب آب آتش در موافقت یهتمل همینی که شما میگیم کف دستتو ببینم دلت گیره خطر خطا رفتی اونی نیست که باید باشه تو زندگیتون خطر میبینم اهل ساختن و کوتاه اومدنم نیست شر و شرارت میبینم توش تلسمت کرده جمع کنیم بسات یا، بیا بریز, بریز. چهار میشه دوازده با یک میشه سیزده نحسیه این سیزده بعد جوری دونبنتو میگیره نازم بودی خوز اولا تو به این بگی؟ رقلیبا از کجا آوردی؟ مگه نگفتم بگو مسافر داری باشو جمعش کن <تصفيق> نه خدا بشین بشین نبخواد کمک کنی دست درد نکنه شما که زن خونه نیستی صفت و شب پا به پایی مردو کار میکنی برم که میشورم میفزم میزنم دلتو میخوری نیوشی جون میکنی نیوشی جون حالا خوش نیست فریده آتیش به جونم نزن <تصفح> میدونم نشونه چیه نشونه خوشی زیاده خوشی که زیاد میشه میزنه زیر دل, دل آدم بعد سر آدم نفته پایین لب و چشم آویزوب میشه مثل من بدبختی و واقعی نکشیده بابا چه ببرم بنزن تو دره جزا میا پنج شنبه به پنج شنبه برید تیکه خورده تیک تیک جونشو خورده خسته خونوشو زیر چاه خلا خاک کنن دور از جون آقا جون این حرفا چیه پش پش بیا می دست سرت بزن بی اینجا کمک کن چه زیاد چله آدم گنده میکنه خیلی سرم درد میکنه چه کردی؟ چه قابل ارز چیزی نیست چطور همگر تو داری؟ با منقاشم نمیشه از دیل زبونت حرف کشید جسالت نمیکنم آقا نوکر با حرف اربابش گوش میده عمل میکنه دریغ که دل و همیشه ساز نمیزنن بعضی وقتا زبون بیدلیل میچرخ و آدم رسفا میکنه اما یه وقتایی هم که دل پر از مهر و محبت و عشقه عین سنگ سنگین میشه و جمع نمیخوره تو چرا عرف نمیزنی؟ بله خانم آو. سلام خانم قربونت برم داری گریه میکنی؟ قربونون اشکات برم نگران نباش نگران نباش بهترین طبیب شهر و براش کردم آره عزیزم آره گریه نکن خانم من حواسم به همه چی هست عزیز دلم کورونم اشکرد ش به هیچ به کار ما نشم تا بهمراد مایم همچ و زمان